الله علی سيدنا رسولنا و آل اهل طيبین و اطهرین و معصومین و رحم الله رحمتک یا رسول الله بحثی که مطرح بود راجع به مباحث عرف که تدریجا در اصول شیعه وارد شد این است که آیا امارات یا امارات یا اصول عملیه مقام ما اومدیم استلهای اون غرق میشه یا نه یه مقدار توضیح ندیم البته از بحث خارج شدیم انصافا من تو بحث‌های دیگه مفید بودم اما خب شاید خیلی جاش اینجا نداره و احساسش که در کلمات مرحوم شیخ این جوری آمده بود که قاعده یا تقریریه یا موضوعی در قطع طریقی ایشو می که اصول و امارات باید مقام قطع میشه بعدا خب تبدل نظر ظاهرم برای ایشان شد یه کلمه ی بعض اصول اضافه کردم یعنی اول بود برای اصول عملی برایم بعض اصول که مرادشون استثار و اصول تنزیلیه اصول تنزیلی قاید مقام میشه که توضیح ها که پکر میشن روزه خیلی واضح و روشن شد انشاءالله راجب به اصول غیر تنزیلی که ایشان به اصطلاح ایشان آقای مقام قهر نمیشه در کلمات مردم شیخ راجب به اصول تنزیلی در احکام کلی در شباز حکمی کلیه خب در کلمات شیخ و غلمای بعد ایشان سه تاست یکی برایت یکی اشتغال یکی هم تخیر این سه از ذکر شد از بسته اینشالله متعرض شد که درباره باره تخیر بحث های هست که جزو اصول عملیه نیست که اینشالا میاد توضیح این مطلب که تخییر آیا هست جزو اصول عملیه یا نیست <تصفح> برایت هم به ذهن ما جزو اصول عملیه نیست چون ما برایت شرعی قاعد نیستیم و برایت به بزر اصول نیست نه هم میشهلا باید توضیح ها بشه از بحث اصول خواهد آمون میمونه که آیا احتیاط با مقام می یا نه من <تصفيق> حرف کردم که زواهر کلمات ادهی از علمانستر شاگرد خود ایشان محلوم آشتیانی که قایم مقام میشه لكن زواهر کلمات ادهی دیگه که نمیشه اصول غیر محرز قایم مقامات نمیشه و این مراحل چهارگانه را هم از محلوم نایمی نرو کردیم که وقتی انسان سانگاه پیدا میکنه چهار مرحله داره شعر یکی اینکه صفت خاصه یکی اینکه کاشفیت داره یکی انکشاف واقع هست و یکی هم جری عملی بعد ازا که امارات قائم مقام علم میشن به لحاظ کاشفیت تا آخر انکشاف و جریان اصول تنزیلی هم قائم مقام علم میشن به لحاظ انکشاف واقعه اصول غیر تنزیلی هم قائم مقام علم میشن به لحاظ جری عملی نه به لحاظ انکشافی وصول از عصر که عبادات چون صاحب آن تو ذهن وارد بشه یک حفصه پاسه عباد مراجعه مقدار ابهام داره در احتیار با اینکه دو مرتبه که نگاه کردن ابهام نداره ایشو میگه به لحاظ جریه عملی قاره مقام علم میشه اگر برا ترجح باشه و اما به لحاظ احراز نه قاره مقام علم نمیشه همون حرفی است که از موایدای دیگه هم داره به این مناسبت عرض شد که مناسب یک توضیح مختصری توضیح ما سارای مختصر دادید شاد واضح نشد راجع به حقیقت احتیاط و تصویری کرد، احتیاط میشه که اصولا مثلا آیا احتیاط دارای امری هست اواملی داره که تفسیر تفسیرون امر در احتیاط و یا نه احتیاط کلا امر نداره یا تفسیر قایل بشین بین احتیاط عقلی و احتیاط شرعی و ممکنه اصلا بگیم احتیاط عقلی قایل مقام علم میشه به خاطر امری که داره اما احتیاط عقلی نه شرعی میشه عقلی نه این یه مقداری توضیح میخواد که باز تحصیلش بعد بیاد حالا اجمالان عرض میکنم چون این مفیده و تو همین مباحث قرض یه مقدار مباحث احتیاط رو باز با متعرض میشیم برانه علم اجمالی بحث علم اجمالی که ایشون در قرض دارن اینشالله متعرضش خواهیم کنید از شبه روز که به ذهن ما احتیاط از سه منظر در سه زاویه یا سه معیار داره احتیاط اینجور نیست که داره من معیار واحدی داشته باشه و به طور طبیعی سه تحصیل برای احتیاط باید بشه به طور طبیعی یکی احتیاط به لحاظ حکم عقل نظری در حکم عقل نظری چون کشف واقعه و اصول واقعه دیگه به استباه امروزی ما بار نداره نل... یعنی یا منفیه احتیاط به لحاظه عقل نظری این است که اینسان جمعی احتمالات رو انجام بده مثلا در یک مسئله ده تا احتمال هست انسان در انجام 4 احتمال هست و تا, تا, تا, تا احتمال این به حکم وقتی انسان جمعی احتمالات انجام داد به واقع میرسه به حکم حقیق یعنی. حالا مگر اونجایی که شارع تصرف کنم مثلا میگه قصد وجمه معتبره مثلا به الله طبیعتا اگر گفت کی گفت مثلا یک بار دست باشوی گفت سه بار دست باشوی با باخاکی گفت اونجا کذا ما همه این احتمالات انجام دادیم عادتا مساویه با واقع میشه دیگه به اصطلاع این ما ببینید یک جزال ریاضی هم ببرید مثلا الف بذارید ب بذارید ت بذارید می‌مساوی با واقع تمام این اختواراتو جاب نکنید مساوی با واقع خب این احتیاط به مستوای عقل نظری درست شده که باری نداره نمیشه بگیم حسنون قضیه و, و نکته‌ای داشته باشه نکتهش چی باشه چه زاویه عقل بخواد یا عغلا عقل یا عغلا حکم بکنه این شینم سهواز از این که انسان مجموعه احتمالاتی رو انجام ده تا به واقع برست احتمال دوم یعنی معنی دوم مور دوم برای احتیار به مستوی عقل نظری عملی احتیار این باستان عقل عملی تابع همون اناوین کلی عنوان کلی که در عقل عملی هست مثلا فرسولی در عقل عملی عنوان کلی رو لزوم استکمال بدونیم که انسان موجودی سروی به کمال رو به استکماله خب احیات همی که از مسادیر استکماله اگر طبعا مصداق برای احیات استکمال شد عقل و حکمه و حسنش میکنه یا به قول مشهور بین اگر از مصداق عدل شد چون اونا حس رو عنوان عدل بردن پس عقل حکم میکنه بعد از اقراض اینکه که این احیات عدله یا این احیات کمال است، یا به لحاظ فردی یا به لحاظ اجتماعی عقل حکم میکنه به حسنش حسن احتیاط یعنی خود کلمه احتیاط از حاسه یه خودتون آنه و شمول و خراگیریه یعنی انسان کاری رو که فراگیر باشه که به نتیجه بهتری در کمال برسه، به درجات فعالیه کمال برسه. خب این هم حکم عقله که به ذهن ما این حدیث مبارکه که دینوک فحست لدینک مراد اینه نه مرادون عقل نظری اختیار جمیع و ما هم تو زندگیمون این طور نیست که اختیار جمیع مصالح فی نفس دوامن حسن مثلا یک معمار بیاد بگه خونه که اینجوری بساز آشفاسونی این ور دیگه معمار درست بگه نه مثلا اون اتاق این ور وقتی ما بیایم به ده به قول این ده تا معمار یه چیزی اینجوری درست میشه ای یک آشفاسونی به قول یه معماری اتاقش اتا یه این معلوم نیست حسنی داشته باشه <تصفيق> یا اگر مثلا به علیه از دکترها مراجعه کردیم بیایم همه اون دواها رو بخوریم خنیش دکتر پنج نسخه تو موسخه داد بگیم تمام مختبرات انجام بدیم این معلوم نیست قطعاً نیمتونه نیست از گروه مجامله از نکرم قطعاً حسن عقلی نداره <تصفيق> <تصفيق> ارز کردم شما بیدیون من عنوان جمعی محتملات رو ارز کردم نه حتی تضامن نداشت این گفته صبح مثلا گفته صبح دوتا خورس بخورم گفته چه تضامن داره گفته یه خورس بخورم ما هر دو ایجام بدیم مسئله چون او یه تشکیز داده مگر, بله مگر, بله مگر این که او بگه خیلی بیاریسی دیگه با این خورس چیز دیگه نخور اگر نگو او این که با هم تاروس ندارن که اون گفت صبح زود این بخور این گفت ساعت ده بخور, بخور. این احتیاط نیست احتیاط به حکم عملی نیست این کمال انسانی نیست که چی کاری بکنه دواهای مختلف رو جمع بکنه و لذا خوب دقیق بکنید گاهی اوقات در احتیاط و حکم عقل عملی اصلا نظر به محتملات نیست راه رو بالا دیفنه عرض میکنه. نه اینکه که بره انجام بده گاهی وقت احتیاض به عقل عملی اختضا میکنه که انسان بجنجه به قول این دکتر یا اون دکتر یا مثلا یه این دکتر ده سال دکتر اون مثلا 5 سال این اینم میگم دکترای کلا از چند تا دانشگاه گرفته اون یکی نه اینا معلوم نیست گاهی اوقات احتیاض به مستوای عقل عملی اختضا میکنه که انسان کمیسیون پزشکی تشکیل بده پنج تا 6 تا دکتر چند بکنه یه نظر فنی نهایی بکنه این نیست که بیان جمعی احتمالات باشه احتیاز معنی عقل عملی این است که انسان اون چه نیرو داره به کار ببره برای اینکه به راه بهتر و صحیح تر برسه مرحوم شیده اول این شیده میاد مرحوم شیده اولا را نهاره کرد در باره با این باره که با فتبالله مستطع اصم تمسوکه این فتبالله مستطع اصم مستوی احتیاط به عقل عملیه راسته انسان نستاد به حضرت حق سبحانه و تعالی هرچی به توانه پیگیری بکنه که موارد تقوای الانی صدق بکنه در این سیزن انسان این حسن بلا اشکال فستقالله مستد ترخون از مصادیق احتیاط به حکم عقل عملیه اما این معنیش نیست اتیار جمعی محتملات که تو ذهنیت اصولی احتیاط به معنی جمعی محتملات گرفتن ما آمدن گفتن که فرسون بیین که این همین حسن هم هست و لذا انشاءالله اگر خداوند توفیق داره و آیه واقعی اشتار کنیم که درست کلی کشیدیم ما در اون دوره سابه به مناسبتی که شیخ در وقت احتیاط داره لارای بفی خسن احتیاط و شرعه اونجا توضیحی دادیم و دیگه گفت که بعد مجرور شدیم یه بابی رو صاحب وسائل در خسن احتیاط و وجوب احتیاط مطبع کرده در جده 18 همه چاپ قدیم در افلاق س شست تا هفت ساره اون با بردود من اون سال ساله ما حالش این تمام رو خوندیم از از این تاخر کند اون روایات رو خوندیم که هایی از این روایات حسن احتیاط در میاد یا میاد سؤال اون این که شیخ نوشته به فی حسن احتیاط اقلا و شرعند این اصلا مستند داره احتیاط به این معنا. که اتیان جمعیه محتملات حسنان عقلن و شرحن نمیشتن دیگه خب منون شیخ نمیشت آقونم مخلوقنه هم گرفته ما به همین مناسبت اونجا متعرض شدیم که آیا واقعا عقل و شرح دلالت میکنه برای این که اتیان جمعیه محتملات حسنان و عرض کرده این که نه روایات برای مطلب دلالت داره حکم عقل کلامیست مشکول شده تو عرفنه اصاب دیگه حالا عرض میشه به نصره به این که بله این هست که در مواردی عقل احتیاط رو حسن می‌بینه. اون در است که مثلا واقعا احتمال بسیار قوی باشه بالا باشه و به اصطلاح احتمال و رایی هم برای وصول به تفسیریه به واقع نباشه ولو زنی شاید مثلا الان بنایه علمای ما در این رساله های عملیه که دیدیم نوشن یا محتاط هست یا مغلد هست یا مشهد یعنی فرض کردن با تمکن انسان از اشتغال و تقریب بازم احتیاط اشتغال نداره یعنی فرض این مسئله سه تا قول از بین علما یک کسی بدونی که تقریب بکنه هر سه و امکانم داره سوال بکنه احنا برهرم تقریب جامعه شرایط میتونه مراجعه کنه مراجعه نکنه و هر سه رو انجام بده نمبلغیر احتیاج. و ها کذا مشتهد فقیه جامعه و شرایطه میتونه مراجعه کنه و حکم و استظهار بکنه بدون مراجعه احتیاط بکنه هر سه احتمال رو انجام بده حالا این در اشتها توی موضوعات خارجی هم همینطوره مثال اونو رو کردم در اتاقی که پنج تا لباس هست یکیش به اصطلاح پاک چهارتاش نجیزه چهار روشن که راحت می آب پاک که نجیز خودون می که خیلی واضحه چهارتا هستر خون روشون هست چهار هستر خون هست یکیش نیست این چرا و روشن همون تو همون تاریکی پرشتا نماز بخونه یک نماز ما از کردیم همچین چیزی اصلا غیر از این کالا نداره اصلا احتمال قبل قبلی قب هم داره نه که هست داره برپردین که انسان احتیاط برای او بخواد مقدمات و حس درش قیدا بشه او شرط اولش اینه که تمکن از امتصال تفصیلی نداشته باشه اشتهادن یا تقریدن یا سؤالن ممکنه سؤال بخونه در شما این نگیز اینه پاک اینه دیگه تا نماز بخونه بدون سؤال انصافاً به ذهن ما هیچ حسنی نداره که این سالا منافذ با شریعت داره منافذ با عقل داره مادیه به امراض میشه جنون و مالی خلیا میشه تزیا عمره ایلگاره. خیلی جهاد داره انسان من این را می‌شنویستند یک یوزل انسان که یا احیای بکنه یا اشتهد یا تعلیم و این من از کدام مدتها تفسیرش کنم شیخ کجای در رساله داره ما اونجا انشالله متوجه میشیم شیخ خلاص کتاب قوانین هم هست جلوی دوی قوانین که کم یشد داره که اجماع قائم است الا بطلان تاره که طریق الاشاره را این از اونجایی که اجماع عرض شده ها سابقا میگفتن اگر شما اشاره تحریر نکنید به احتیاط بکنید بهتون باطله این سابقا اجماع بر اون ورگود حالا تو زمان ما عوض شد گفتن نه شما میتونید بدون اشاره تحریر با احتیاج و عملتون هم درسته درا ترمذی ما اینشالله این بحثات بعد متعرض میشین چون این مساله در ذهن آمده و تصور شده ما عوامر احتیاط داریم یا یک غصنی داره احتیاط عقلن این رو به نحوه اشاره گفتیم اینشالله تفصیلش در سیعتی اینشالله پس در این مرحله از احتیاط این توش اتیان جمعی محتملات نیست این اصلا نقطه فرمیش غصنه حالا من بعد دو به همین نوز یه توضیح را جبین غصن ارض میکنم احتیاط سوم که بیشتر اینجاها توی اصول عملی مراد ماست احتیاط به مستوی اصل عملی احتیاط به مستوی اصل عملی بحثی راجب به حسن و نداره بحثی راجب به احتمالات نداره چون به نظر ما اصول عملی کلن ابداعات نفس هست احتیاط به اقل عملی این است که در بعضی موارد نفس طبقی یک ما ماعینی ابداع میکنه یک صورتی رو. یعنی به عبارت این اخرام ما در اصول به طور کلی کل اصول بحث ما اساساً در نحوه تنجزه. تنجز یا به اصطلاع بعد یا حجت. حجت یا تنجز دارمدار انتباع صورت در ذهنه. به طور کلی. کل افغاست اصول من البد و تمام و اصول رو این کلمه هست اون صورت ذهنی شما چی جوری تولید سیدا کرده؟ تا موجب به پنجز بشه یا به خلاف اون موجه این خلاصه بحث اصوله ما در اونجا عرض کردیم تنین مبارس اولش ما مرز کردیم عرض کردیم این صورت ذهنی رو از جهات مختلف میتونیم بررسی بکنیم یکیش از این جهازه یه گاهی صورت ذهنی ما این فعال از واقع مثلا زراره ما گفت امام پروندن لحنه ارنه و حرام این از رو. در این وقت اون صورتی که در ذهن ما هست دقت دقیق کنیم ابداع خودمونه ذهن درست کرده مثلا ذهن دیروز زنده بود میگیم امروزم زنده است این حیات ذهن صورت ذهنی ها ما دیروزه صحیح فیش ما اینه که استثال اصله به این معنا که ابداع نفسه نفس اینو درست میکنه دیگه تاخری خون در یکی از این دو کاسه افتاد دقت بکنید تا قطره خون دید اجتنر عن النجس آمد اجتنر عن النجس یگینی دیگه شوقی نداره باشه این اجتنر عن الان تو مقام تطبیق به این دو تا خورده میگن در اینجا نفس انسانی ابداع میکنه که این اجتنر عن النجس سو اینم هست سو این هست از وقتی این هم شرایط داره مثلا شرایط که این به نحو تریحی باشه اگر گفت اشتره برایم نکسل معلوم خب اینی که نکسل معلوم نیست اینی که نکسل معلوم مرغوم مجلسی در کتاب عربعین اواخر عربعینشون نسبت داده شده بهشون و از این ایشون گفته کتاب عربعینشان چاک شده اواخر کتاب عربعین در شنر حدیث کلوش این لکه حلال حتی تعرف انهو هرامون بینه همین مطلب رو میگیشون هست همین مطلب میگه. علم اجمالی بیگشون باید منظر اون بست چیش اکه ایشون میگه چون در رواد داره و حتی تعرف انهو هرامون به اینه ایشون تفسیر نه ما تفسیر و اصولی اون اینه علم ایشون موضوعی گرفتن اگر علم موضوعی شد علم اجمالی منظر ایست باشه برگیه ایدیه پس این که علم اجمالی منجزه قبائدی داره این که ایشون دارم کتاب چاب کردن بیاره هست میگه اشتار نداره بمیه اساس هل ده هر ده شده خیلی عجیب هست من مستر به شما حرک گرده کتاب الاروهی نیشون چاب شده یه جب کتاب الاروهی آخر ها چه مثلا یک هشتمه به آخر مونده چهر حدیث اصاصل هل اونجا شهر رو پس این یک تطوری که اصالت الهل در هر دو جایی میشه تحریل اصولیش علم و نحو موضوعیه اما اگر علم و نحو تحریحی که نسبت هم علا حد انتباه شد نسبت انتباه رو این و اون یکیه اینجا نفس شما ابداع میکنی این ابداع شماست شما یک انفعال داریم یک ابداء داریم یک واقع دارین، یک آثی خودتون داریم انفعال چی؟ شما چیه؟ یه فونوقطه، این انفعال شما. یه خون دیدین. ابداء شما چیه؟ از هر دو استناد بکن. از هر دو. دقتین؟ از هر دو استناد بکن. این معنای ابداء شما میگه اینه. واقع یه چیه؟ ابداء شما دو تاست. این اسمشوشی احتیاط به اصل عملی اقلالی ما به نظام ما اقلال هفتیم حب اقلال اقلال حالا لزوم در, در محتمل از یه حرفا اون ریشار جایی خودش باشه این اقدار رو ما میبینیم همچنین قاله معروف علی اشتغال و یقینی یقصدی الفراغ و اون اونم همینه شما مثلا هم در وقت نماز و زور هستیم شک می کنید رو خوندی یا نخوندی دقت بکنید تفسیرش اینه شما یک ذهنیتون یک امری میاد تا و اذان گفت فهمیدید وجوب آمد این در ذهن شما نقش یه یک با الیک نماز درست شد؟ دو ساعت گذشته نمی این رفت یا نرفت ببینید رفت این عقل نماز برداشته شد اگر خوندی برداشته شد نکندید برداشت در چون شما همون صورت یعنی سر اینه همون صورت رو ادامه همون یعنی شما ذهنتون بیاد به اول وقت و امر اقنه سلاح میبینید در ذهن شما نیامده سقوط این امر یعنی چی نیامده یعنی هنوز حس میکنون امر موجود این احساس این جهت ابداعی نفسی شما این حسیش افیاده حسنابراین یک اصل هم داریم به نام اساس الاحتیار اختیار به مستوای عقل اصل اولی به مستوای اصل اولی محورش اینه باید به نحوه ابداع نفس برسید حالا من در اینجا نکته عرض می کنم که ان شاء الله اگه وقت نگاه بفرایید خیلی معرکهت ال آراء بین اصول متأخر شده خیلی زوافتشه خب گفتن اگر شبه محسوره باشه یه جور غیرمحصوره باشه لایر جمعه داشته نه بحث مفصلی کردند که غیرمحصوره چیه بعضا نصور گردن اصلا یک به ده به صد پنج پنجه و گفتن نه خروج از محله افتلاس و از الاخرین صحبت در اینجا شد که من نمیخوام خوانا باز بشین طبق این تفسیری که ما دادیم اون, اون مسئله هم حل شد مهیاره بیل شبهه محصوره و غیرمحصوره اون مسئله خود به خود برای حل اگ معیار اینه اگر اصلاف شبهه به مقداری که نفس ابداع میکنه این میشه محصوله با اون مقداری نیست که نفس بسونه ابداع میکنه میشه در محصوله پیل را این تفصیل این دیگه دارمدار اینه مثلا اگر یک در پنج باشه نفس ابداع میکنه اما اگر یک در در باشه نفس ابداع نمیکنه یه مواد مشکولی همیم پیش میگه طبیعتا پیش میاد, پیش میاد. طبیعتا حالا اون چون این سیره اوغلاییون بحث خاص خودشه ما از منشی گذری وقت می من یه وقتی به سوال اینجا که سیره اوغلایی در جایی دقیقاً میگم هر سوالی باشه حتی خود آبی دیگه مساجد و مشابه بود اختصاص و منهنجی نداره نه روشی شد برای شما خاص بنابراین خود اختیار هم تفسیر شد سرش هم تفسیر شد اون شبهه اشکال معروف که فرق بین شبهه معروف محصول و محصور و غیر محصور حل شد هر وقتی که دیدی نفس میتونه ابداع بکنن این میشه محصول یه نفس اطراف انتباه رو جهات مختلفی نه البته این لازم نیست مثلا ممکنه از این فرش شما یک قطره خون افتاده اما نسبت قطره خون به کل فرش یک درصده اما محصول نفسی رو ابداع میکنه چرا؟ چون فرش کوچیکه میگه از کل فرش رو نیستنم بکن همجا نسبت یک به سد و نوید و هشتاد یک زبایای دیگری که پیش میاد ولذا ازیادی رفتن از رای افتلا و عدم افتلا این افتلا و عدم افتلا که یک حدی خوبه چرا؟ چون اون افتلا در افتلا تاثیر داره نه خودش افتلا معثره اینا, اینا منشأ میشن توی یک نقطه نفستون میشه افتلا بکنه این میشه عرص. میشه افتلا نمیتونه افنابو کنیم میشه احتیاط حالا بسیم درجه ریعتیاط مستحب یا بسیم مثلا درجه اول استحباب دو برسه آخری. این راجعه به سه نهر اختیار و مرجع اصل اختیار، اصل اختیار، اصل, اصل عملی مرجعش به تنجز المحتمله دائما اصل عملی مرجعش به تنجز المحتمله یعنی چی؟ چون من از کردم کناران مراره ما یک احتمال داریم یک محتمل داریم او هزا توی زندگی خودشون ما بین این دوتای نسبت رو مراعات میکنن مثلا اگر احتمال مثلا یک به پنج باشه این که برن دنبالش یا نگر محتمل حساب میکنن مثلا یعنی یک احتمال هر که شما این کار رو امروز انجام بدیم، پس یک میلیون گیوتون میاد یک احتمال هم هستن سد هزارتون هست این برای یک ای احتمال پس این محاسبات میکنه که اون یک میلیون در زندگی او چه اثری داره؟ اگر مهم بود به درجات اهمیت به دنبال او میره به الله نه مثلا اگه گفتن یک ظرف از صد تا ظرف توش سم داره نصلاح یک به صده من ازاده که احتمال ضعیفه یک به صده اما محتمل بغلاده مهمه که حیات انسانی. پس دائما ما تو زندگیمون بین قوت احتمال و اهمیت محتوا اینو به قدر بفهمید ارزش اهمیت و نه قوت احتمال یعنی درجات احتمال و اهمیت مختلف ما یک تعادلی رو یک نسبتی رو بین اینها در زندگی عمل خود ما ملاحظه می‌کنیم طبق این ملاحظه‌ای که میکنیم اون زندگی خودمون رو توصیف به حسن قوه میکنین و لزوما گاهی خود این ابداع نفس که اصل عملی است این مساق حکم عقل عملی هم به حس میشه این که گفتم بعد توضیح اینا دقیق توضیحشه خود احتمال قولت احتمال خوب دقت کنید قدرت احتمال خود این هم حساب میاره مثلا الان بنای ما بر اینه که اگر احتمال فوق العاده قوی نبود مثلا 50 درصد 60 درصد بود یک دسته نبود باز بود خوب دقت کنید. این احتمال غالبا منجز نیست محترمان در حد متوسط این غالبا منجز نیست مثلا فاز این احتمال بازی اصطلاحی است که من گاهی به کار می‌برم مراد ما از احتمال باز اون احتمالی است که طرف نداره احتمال بسته اون احتمالیست که طرف داره یا به اصطلاح اصولی خودمون اطراف علم اجمالی ما بوجه اطراف علم اجمالی بیشترین ای کار بکنم ما میگیم احتمال اگر باز باشه این طرف نداره خوب در قدر فرمان احتمال اگر باز باشه یا اگر طرف هم داره اون طرف کاری نمی‌کنه. مثلا در مایه از او خارج شده دوران امر بین بول و مزیه خب مزی کاری نمی کنه میمونه بول تنها بولو تنها وزو میگاره این مشکلی اجاز نمی کنه اما دوران امر بین بول و منی باشه اینجا هم باید وزو بگیرم باید بس انجام ده این چه فرقی که است اینه که یک طرف احتمال وقتی منشه اثر نبود اون احتمال باز میمونه بسته نمیشه یا بوله یا مز دقیق بکنید طرف مزیش تأثیر نداز میشه احتمال باز باقید بول میونه اون یکیش اما اگر شد بول یا منی هر دو طرف تاثیر داره. و جزای اکتفای به قصد جنابت هم مشکل بکنه چرا؟ چون ولو قصد جنابت موجزی از وضوع الا اینجا احراض نشده منیه احتمال بول هست بول اگر میشه قصد کافیی سطحان با وضوع بگیره دقیق رو وقتی به اصطلاح طرف احتمال باز باشه عبارتی که در اصول داریم میگیم براعت جاری میشه احتمال باز یعنی مثلا فرضسون شربت اون حرام یادن این احتمال بازه اگر احتمال 60 درصد 70 درصد شد، بناشون بر که منجز نیست برد در مثلا رو 90 درصد اسمینان و اصول و ارکی تا بشه به اصطلاح منجز پس یکی بحث قبوت احتماله یکی بحث اهمیت محتمله ما اگر از قبوت احتمال صحبت بکنیم این مناسب با براعته و اگر در جایی هم عقل حکم بکنه که احتمال قبیه خوب دقت بکنیم و این احتمال قبیه منجزه اینجا هم مصداق احتیاط حسن میشه اینطور نیست که ما هر احتمالی، میگم هر احتمالی هست داشته باشه. می یه درجات اون احتمال و منشأ احتمال رو حساب می‌کنیم. یه رسم منشأ احتمال ترسیم. الان هر سی این بعضی گفتن یک فقیهی فتاوا داد تا اقل از باب تسامح درادله استنباط ثابت میشه. خب این سوال پیش میاد آیا فتوای فقیه میتونه به لحاظ قوت احتمال تا اینجا پیش بره که نفس انسانی که انسان روی یک نوع کمال ببینه ببینید مئیاره در تنجیز قوت احتمال این است که باید باز وارد در حکم عقل عملی اما این که مجرد این که بله در حکم عقل نظری وارد میشه فقیری فتفا داره در حد این که ما فتفایی که از اطواب احتمالا انجام بودیم باید اتیان جمعی محتماله چون فتفای فقیه با که اتیان جمعی محتملات که با عنوان حکم نداره احتمالاتی که منشع داشته باشه اما نرسه به حد و حجه این در یک درجات خصوص داره مخصوصا در شریعت مقدس. اما بیه این دیگه مثلا خبر ضعیف فرض که فوق العاده ضعیفه بلکه آثار جل برش واضحه این هم یک حسن ایجاد میکن این هم جزء احتمالات این هم جزء قوت احتمال جزء موارد پنجیزه صافن خیلی بعیده فوق العاده بعیده من خود برای چند تا مثال عرض کردم یه دفعه رساله مرحوم کتاب مرحوم آیه ملکی تجریدی رضوان الله تعالی یک دستور عربی نمیشه که, که من ای عزیز اگه هیچ کاری تو بکنی یک نمازی که مرحوم سیناوس این طاو سیذ و سالکی جمال الصالحین این طاو در کتاب اقبال نمیشه خیلی توصیف کنه اینا انجام بده داره توصیف امام خب مرجع که به خاطر اقبال کی کجا خودناقل کرده وقتی منشأ نروی ایشان بله ببین در اقبال رو از احمد ابن قاسم جویبائی حروی یکی از روات اهل سنت این از اون کذابین فوق العاده عجیب در پیش اهل سنت یعنی یکی از و جوبه های کذب و وضع و در شخص شخص این فوقالا دید این باقی باور کردنش برای شما مشکل این چند تا چند حفظ بود برای مطالبی که عرضتون هست خدمتون هست حتی زمان رسوله هم واقع نشده بود پس مثلا این میکروفاخ خوبه هم نمیگه برای حدت برای این قرآن این رسوله که میکروفاخ خیلی خوبه اینجوری وضعی کردی در حده مبتزر نه یک وضع عادی خب حالا هر مرحوان ملکی آهر واسر هده جادشون چجور برده؟ خب وقتی سیدین تاووس این رو میاد از چین شخصی نقل میکنه؟ این چه حکم عقل عرم؟ این چون یکی چاریده لاعقل نماز انجام بده که سید و سالهی در کتاب اقبالش نقل فرم خب چجور در انسان؟ چه احتمالی؟ این چه حسنی پیدا میکنه؟ چه قوت تنجیدی میاده؟ همین سلات لیلت رقایی که باز هم سیدو تاووسی رو کرده به این این سند و متن و اصلا متن مال اونها سند و مال اونهاست در کتاب موضوعات ابن جوزی آمده همین سند و همین و همین خودت و همین حرفا چیه شمید چیه شبه؟ آرزوها شبه اول ما جب شبه لیلت رقایی یک حدیثیست که آثار جر از من رأسی الاز بیره خب این چه درجه برای انسان مثلا قوت احتمال بیاره حالا سیدن تابوس رحمه الله مرد بزرگوار مرد سید و سالکی یا مال و سالکی ما در اون بزرگواری اینا بحث نداریم اما چون اینها مسادر علمش رو نوشتن از کلم به اینه در موضوعات علم است. و توضیحش هم از کلم شوالا من رو سیدن تابوس آقر به قول روزه چی نهده گرگرسی گرسی گرسی گرسی گرس مثلاً چون اهل سنت شما میدونید به چه برزی نماز ترابیه رو میخونن در ماه رمضان بعد از نماز ترابیه در پیه سال یکی جمعه اول ماه اون هم توی مساجه جمعه سلاسی میکنه لیلت رقائب یعنی لیلت رقائب از لیالی مشروعه اهل سنت بعد از ترابیه ترابیه در چه اول به خاطر این حدیث جلیف و لیلت رقائب حدیث دوبار و شب نیمه ماه شعبان ازنیلی ماشاءالله ما هم به ماج داریم اونا نه به خاطر ولات خرجون چون لیله قبل حالا برمیشم میگم از این احتمال میگم قرنیم به هر حال دقت رو بکنید ما حرفمون اینه که به مجردی که گفتن یک حدیثی آمده یا اون فلان آدم کرد یا فلان عمل کرد این بگیم این برای ما قوهت احتمال میاره این روشن شد اگر ما می‌خوایم در جایی بگیم اتیان احتمال به خاطر تنجیز احتمال و حسن پیدا کرده باید دارای مناشه ای باشه که تا اقل 80 درسته به حد تنجیز نرسونه لذا به ذهن ما این حکم عرب و حسن احتیاط داره بزار دو چیزه یا احتمال و منجز میدینه احتمال تنجیز میده یا اون متنجه یا اهمیت محتمل در هر جیسی رو تنجز میبینه یعنی یا باید برگرده به تنجیز و الاحتمال یعنی احتمالا نهی که نه. تنجیز و الاحتمال و یا باید برگرده به تنجز محتمل این میعارش میعارش این دوسط اصل عملی که ما میگیم اساس الاحسیات این دائمان تنجز محتمله فقط یک ابهام داریم که میگه دائمان اون الهام باید حل بشه ما وقتی میگیم یا این نجسه یا این نجست خب اونجا تنجس المحتمل واضحه چون نجسه دیدی شما میگید مثلا من مثال اگر بگیم شوربهستون حرامه بگین تنجس المحتمل یعنی این حرمت مثلا متنجس بشه این شما چطور علم اجمالی میبینید این علم اجمالی دیدین همون چیزی در تقریب دلیل انطلاق اومده یعنی ما این حکم رو در مجموعه شریعت ببینیم خب دقیق کنیم حکم رو در مجموعی شریعت اگر در مجموعه شریعت دیدیم میشه تنجزل محتمل اگر یه میشه بخصه اگر گفتیم نه آقا مجموعه شریعت خیلی عرض عریضی داره مثل اون شبهه غیرمحصولی میمونه اصلا افتحانه میکنیم اینجا برمیگیم به تنجیز و احتمال بگیم اگر این احتمال قویز تنجیز میداره پس خوب دقیق بپرماییم این احتمالاتی که ما در مثل شربت میدیم، این به یک معنا تنجز و محتمله به یک معنا تنجز و احتماله سر علمی هم همینه و ادهه از آقایان اگه ملاحظه رو فرمایید در بحث این که یجب و احکام شرعیه و یجب و خروج از اهدش رو در هر شروع ارغم را رازیم اول ارغم در اشتاها سقلید معیار رو همین اساطر احضیات گرسن تنجز و گرفتن که البته من الان اجمالاً معرض با این وقت ما گذاشت این روز اجمالاً متعرف شدید اینشالله تفصیلش رو در محل خودش اینشالله تفصیلن عرض میکنیم پس بنابراین ما راجع به احتمالاتی جه هست اگر میخواد و حسن پیدا بکنه یا باید برگرده به تنجز محتمل یا به تنجیز احتمال البته در یک درجه یه هم تنجز محتمل هست میخواد احراز و حسن بکنه یا نکنه یعنی اون محتمل تلقائیاً متنجز میشه محتمل تنجز بیداره این خلاصه بحث به احتیاط عقلی یه فتمه بر چند است هست راجب احتیاط شرعی چیه؟ مثلا معروف است در شبهات شبهات نسا در شباط فروش به اصطلاع شد احتیاط حسنه اصلا این گفتن انسان خاص اردام میکنه برای خانون میکنه این خواهر رضاییه جوز احراز نشده خب در اونجا اصالات عدم رضا است عدم رضا جاریه لیکن معذاله گفتن احتیاط میکنه ازدواز درمونه در روایت هم داره بلقه که ان امرعتن انها اختفه من رضایه او وله اللها اختفه من رضایه آیا در این روایات شرعی غیر از حکم عقلیس به ذهن ما همون حکم عقلیس هیچ فرمون نمیکنه فقط نقطه دقیقه کنی امام می فهمه لعله ها اخت و کمه نرزایه اگر به لحاظ لعلها ها نظر امام باشه میشه تنجیز و احتمال چون لعله احتمال اگر به لحاظ اخت و کمه نظر داشی میشه تنجیز و محتمال چون خواهر رزایی بودن خیلی برد <تصفيق> دقیقه ازدرافت نقطه روش و لعلها این که این مهمیه که ما یک مطلب را اول در معیار اغلایی به به در مقام سبوت تصور بکنیم مرحله دوم روایت رو تصمیم بدیم. در مورد احتیاط در شبهات به اصطلاح فروج این سوال مطرح میشه این به وقتا لعلها اخت رو که این رضایه شما سوال میفرمایید شما بسید احتیاط یا تجلیز و احتماله یا تنجزه محقبله این کد انصافش حدیث به هر دو بیخوره خوره. او کلمه لعله ها رو نگاه بکنید. نه حاجت جو نکنید. کلمه اوخس که در رئا رو نگاه بکنید. این شناجزور بوستر. هر دو احتمال انصافا بهش انطباق داره. و شاید امام به این تعبیر که اگر علم اجمالی باشه تنه جزء محتمله اگر شبهه برمی باشه تلیز احتمال و هر حال پس احتیاط شرعی نقطه خاصی نداره احتیاط شرعی هم باید مرجعش به یکی از این جکا باشه بله اخوک دین و فهدت دینه راهات مرسله سنده نداره این علا تقدیر سبود همون احتیاط حسن عقل عملی است. ربطی به نظری یا اصل عملی نداره این راضی به من با این ترتیدم که ما عرض کردیم روچن شد که این ابداعی کرد چون ابداعی یعنی این صورت تنجز ابداع نفسی این رفتا قائل مقام علم به لحاظ احراز نمیشه اما قائل مقام علم به لحاظ تنجز میشه کن برحال آمارگز هنگیزگوره یکی مولی نمیشون محتمل باید مقام علم به اون لحاظ میشم زید من هم آزی ها هم دارم هر فرض مفیقی اما به لحاظ احراز موضوع ندیشه فسال الله علیه و محمد